درس دوم خواندن طلاق در جامعه ایلی ایران طلاق در ایران امری پسندیده نیست و در فرهنگ جامعه ایلی پدیدهای زشت به شمار می آید بنابراین میزان طلاق در این جوامع بسیار کم است طبق قوانین شرعی ای در ایران تنها مرد است که می تواند زنش را طلاق بدهد و زن فقط در موارد خاصی می تواند تقاضای طلاق کند و از شوهرش طلاق بگیرد از میان این موارد می توان ناتوانی جنسی و اعتیاد مرد را نام برد در جوامع ایلی عواملی وجود دارند که طلاق زن را اجتناب ناپذیر می کنند عواملی چون رابطه نامشروع زن با مرد دیگر فرمان نبردن از شوهر نازا بودن زن و فرزند پسر نیاوردند در جامعه ایلی و به طور کلی در جامعه های سنتی ایران بچه دار نشدن را صرفا به نازایی زن نسبت می دهند بنابراین مرد می تواند زنش را به دلیل نازایی طلاق دهد اما چون طلاق برای زن اتفاق بسیار تلخی است معمولا اگر مرد توانایی مالی داشته باشد زنش را طلاق نمیدهد و زن دومی میگیرد فارسی عامیانه کتابی جلال این بود که هی میرفت و میآمد به همه جا سر میکشید نفس زنان به همه فرمان میداد با تازه واردها تعارف میکرد بچه ها را می ترسند که شیطنت نکنند دعا و نفرین می به پاتیل سمنو سر میکشید کشید و رقیه. آهای رقیه چایی واسه گلین خانم بردی؟ و منتظر جواب دخترش نمی شد که می گفت چشم الان می برم آهای عباس ذلیل شده اگه دستم بهت برسه دم خورشید کبابت می مگه چی کار کردم خدا یا؟ شش خانم جون خیلی خوش اومدید. عجرتون با فاطمه زهرا. عروستون حالش چطوره؟ پای شما رو میبوسه خانم. اینشالله عروسی دختر خودتون. خدا نظرتون رو قبول کنه. عمقزی به نظرم دیگه وقتش شده که آتیش زیر پاتیلو بکشیم. ها؟ نه نه, نه. هنوز یه نیم ساعتی کار داره. وای خواهر چرا اینقدر دیر اومدی؟ مجلس ختم که نبود خواهر. و به صدای مریم خانم که با خواهرش خوشو بش کرد بچه ها فریاد کنان ریختند که آی خاله آب نباتی، خاله آب نباتی و با دست های دراز از سر و کله هم بالا می رفتند خاله بچه نداشت و تمام بچه های خانواده میدانستند که جواب سلامشان آبنبات است خاله از زیر چادر کیف و پارچهیش رو درآورد آورد زیپان را کشید و یکی یک دانه آب نبات توی دست بچه ها گذاشت اما بچه ها یکی دوتا نبودند بیشتر بدانیم فروغ فرخصاد فروغ فرخصاد یکی از مهمترین و محبوبترین شعرهای معاصر ایران است وی در سال 1313 متولد شد و در سی سالگی در یک تصادف اتومبیل کشته شد فروغ فرخزاد پنج مجموعه شعر منتشر کرد شعر زیر از مجموعه چهار روم فروق به عنوان تولدی دیگر می باشد در دو مجموعه آخرش فروغ اغلب به مسائل اجتماعی پرداخته است جمعه جمعه ساکت جمعه متروک جمعه چون کوچه های کهنه قمنگیز جمعه اندیشه های تنبل بیمار جمعه خمیازه های موزی کشدار جمعه بی انتظار جمعه تسلیم خانه خالی خانه دلگیر خانه دربسته بر هجوم جوانی خانه تاریکی و تصور خورشید خانه تنهایی و تفعل و تردید خانه پرده کتاب گنج تصاویر آه چه آرام و پرغرور گذر داشت زندگی من چون جویبار غریبی در دل این جمع‌های ساکت متروک در دل این خانه‌های خالی دلگیر آه چه آرام و پرغرور گذر داشت ایران را بهتر بشناسیم بادگیر دو بادگیر در شهر ماهان در استان کرمان شهر ماهان مانند بسیاری از شهرهای مرکزی و جنوبی ایران دارای آب و هوایی بسیار گرم می باشد در گذشته قبل از اختراع پنکه برقی و کولر معمارهای ایران و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس با ساختن بادگیر کوشش می‌کردند. ساختمانها را در روزهای داغ تابستان خنک نگه دارند.